بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائي اللهم اشكرك يا يا هر شو در نو 14 میگه مرحوم شیخ به اتفاقن صاحب شرایط زبان الله علیه اجمعین هر بعدش در باب مکاسد محرد قرار دادن این چه طوره در امال تیپین صاحب مرحلان رویشون مسئله بندی کردن به نظر که چهاری سه چهار که بیشن از ایشون دیگه مفصل مسئله بندی کردن به حروف حجایی یکیشم سهر حرف سین سهر و تکسل عرضای سهر اون خود سهر حرامه تکسلشون حرامه فهموندن از سهران حرام ممکن جمله چون رمالیات داره بلا خلا ببینیم این بحث سه هم در خلاب بحث امرو این حالای امارایت خود محفظه نه این حالا رو برای اینکه بحث برگی ما وضع شوشن بشه جهات مختلفی در باب سهر هست که با به لحاظ علمی مهمترین جهتش موضوع سهره اینجا نرز می اضافه این از هرمش مهم کرد که حریبتاً سه چیه و خرق بین سهر بقیه به چه محکم است و یکی راجب حرمت شد که این کار حرام یکی راجب به مسئله کفره خدا هر مهنده که ما برای سهر کردیم آیا سهر موجود به کفر نیسی یکی شد مسئله حده که آیا کسی که صاحب بود حد نداره این سه چهار تا مسئله است که به این مناسبت مثلا برسر حد شد که ها حدود در مسائل ابرده پس یه بخصه شاجه به خود عمله که از کنین خود عمل رو ارحان در کتب ما جالی معلوم نوردن ایلا بندی از کتاب مثلا اینکه ما همه ما سوزید کردن ایلا جهر نوردن یکی بحث تخصر شه یکی مرمون شیفنی موازد اینجا بوده و اینسان ها عرض خواهی کرد که در کتاب و هم هم اونجا آورده بحث تخصر یه بحثم بحث کفر یه بحثم بحث استداق حجود چه حد بشه که آیا صاحر هر دیگاه یا نه خب طبعاً بحثه دیگه هم داره که نه این جمعه توبه یکسته تا آیا اصلا صاحب توبش قبول میشه نمیشه و نهره توبه بود و, بو و چیکار کار رو کنه و لازم بحث سنگیمتری که من حیث و بشموع هست بحث موضوع خارجی شد که صرف چیه هست و این اجمالش اینه که اولا موضوعات عرفی من همیشه عرض کردم طبیعت موضوعات عرفی همیشه اکیمان داره حتی مثل لبزه که این محروم واضحی از اجمال داره برد محروم این مسادق واضح زیاد داریم آب اما یک کمی توش گل خاط بریزن آب میگن یک کمی میشتر بریزن زیاد بریزن گل میگن خب ما بینه همان مسادق مشتبر هست پس یه مشکل این که اصولا محروم و غرفی داره مشکل هست مشکل دیگه اینه که سه چون یه چیزی رو نشون میداده که تر تصور رو اون زمان نمی شده در میکنه این رو تأثیر میگذر شده در سهر یعنی مثلا این با مثال همین درسته کنترل کنترلالی شما میشه یه ترزیر از وقت اگر این فصلی در دوی سال قبل بود شما زرون مردم میکاره میشه شما, شما ساده این سر نیست یه بحث علمی یعنی یک مشکلی که در سه هست ندیم روشن شد که آهد خوبی دیگران اونا خیلی گیر کردن ما هم که خیلی از مطالب من علمی بوده واقعیت علمی داشته بسی این شخص میامده از او استفاده سو استفاده،, استفاده میکرده به مناسبه از این شخص آن ولی کتاب حیات و حیوان ماده دنگیریه نمزنگریه ایشون در عنوان قروفل زیدی تیخی به اسطلاح چیوش این هم خاک بفت نمیشه که از خساس حیوانی که مثلا فرسن میدونه فردا تو یا باد تو از طرف میاد این لانه خودش از اون طرف میرنده خیلی عزید بیان به این حیوان این داده مثلا یه بیست و شارس باد میاد ایجاد مانع میکنه شد ایسی مثلا از فشیش ها رو که این وقتی این هر اون آینده خبر از وقتی به در یک مشکل سر در حالت اینه یک مشکل سر یعنی چند تا مشکل در سر در این که آید اینها فی نفسه مثلا یه مشکل سر استعانه به اجرمه یا شیاطینه اصلا هم یا نه بزار به ما مثلا ما را جده کردیم مثلا ما چند تا جرمی مثلا اشتار داریم استعانه به اجرمه یا استعانه به شیاطینه خب از درهای آسان بارد که آیات موارد که قطعا برای آیات در نیست که مونیداتی اصلا بنامه جن خب داره قولت های خاصی هستند حالت جن یعنی هیچ مجموع از انسان ذریع سره قبیه هر نیست او قیب مکانی داره انسان مکانی میشه الان اونجا باشه از دیوارت بشه اونجه دیگه باشه دیگه باشه به مکانی منتویه برای قیب زمانی نه او قیب مکانی برای اون منتقیه. میتونه اطلاع از اماکه مختلف, مختلف بداره کنه بشر محدودیت شهود مکانی در این جرس و اطلاع در جاده اون وقت با استخده علیکیه مثلا کارهایی رو انجام میدن چیز رو انجام میدن حتی اصلاً مثلا چیزی هر جایی بر جای دیگه میزنم و حالا مجرم اینها رو این مثلا در عرف گاهی به اینها سه رو مثلا این رو از حساب میکرد دقیقه هم در سال که اون که در وعاله یه همه وعالهی باشه به اصطلاح بعضه از آیان به اصطلاح در آلم غیب باشه اصطلاح این آیان از جنه و شیاطی رو قیب طبیعی میدونه اول مقره غیب رو به خلاف آیانی که مثلا نفس رو بعد و بعد احبو برموناسب مراسب قیب طبیعی رو که اول مراسب غیبه در مثل جن میدونه از جنه و شرحاتین رو اون قید طبیعی یا قید اول میدن خب ممکن است توسط اونها تأثیری انسان انجام بده این مطلب حقه نه این باطل باشه واقعیت هم داره این نرم کلام آیا این مطلب خودش حرامه یا نه یعنی در باب سه ممکن است بگیم این بیون مطلب که بسیر جن کار رو انجام بده خودش این از حرام نیست اگر مثلا توازید اعمال مردم دوزی اون حرامه این یک دو اگر با این تصفیلی که نستاید به جن کرده فشاری در بیاد مثلا جن رو اضراری که از این با حرامه چون شواهد آیات این از که جن هم همون تکلیفی که داره اینا سمینا قرآن هجبا درده یا چی من شد میدونو نه یاره دیگه یا من شبزین برای نه خود سواله کن که دار که همون حالت تکلیف که برای انسان هست و اما منت صالحون و منت قاسطون و من دونه داره همون هم صالح دارن و دارن یه بسید اینه اینه که آیا تسخیر خود جنتی نفسه به لازم خود جن حرام هست یا نه پس در بابسته این ما یک خیلی بزرگی داریم در باب سه یعنی انصافن و کلمات اصحاب رو در اینجا جمع آوریش خیلی مشکله نه اصحاب دیره اصحاب مشکله. یه مقدارش مال جهل ماست یه مقدارش مال این که اصلا اون مطلب رو مجده اصلا نباشه خیالات باشه ظاهر آلی مبارکن خیالاته و ادا حباب هم و هم یو خیالو ته من انها خیال میکنن از یک طرف هم خیال لید هم سفر که وقت نیاز اما از طرف یعنی هر علمیه که خیال نیست شاید نقطه خیالش گردیگی باشه اینا مثلا ها رو گرفته به شکل مار نقاشی نش... نش... من بکر جیوه داده بوده جیوه یک خواص عجیبی داره جزوه معادن عجیبه در حتی در خب قدیم و فیزیک قدیم و شیمی قدیم جزوه چیزها بسیار عجیبه از دو سا هست که خیلی دیشون همیت داده که جیوه که جیوه که بویه خوال بستش باشد میگم این ها جیوه دادن و شما هم میخواییم سوی بکنن جیوه صرف نیست شما هم تناب بگ شکل ما ها نکشید روش نکاشی یه یک به تو آسا این را شده یو خیلیم علیه من صحره این در واقع تسعار و این بحث علیم نقطه, نقطه بوده جیه این داره مثلا در کساب همین مدروسه دیگه تندر قدی راز که شده مثل بخواهیم نروگم خدا اینو مطالب به نظرانی که خنددار هستن چرا ها اگر تو به این حالتی درشتن رو یا گوگرد گوگرده که کبیس میگوستن کبیس ماهیم گوگرده جیوه هم که زبه بود که به هر حال این من بخواهیم آشهاش این ذهنیت رو دقت بکنید که اینها یک مشکل اساسی این بوده. آقایی موردی به خیلی علاقه من ظاهرش این واقعا سری نمیکردن حرکت نمیکردن کردن لیکن به خاطر سهر که کردن خیال می حرکت نمی این شالا من از تاریم اصرار داره که سهر همینه اما آقای این اینه من هیگار پنبت مقدمات آماده می کنه آقای خویی هم اصرار داره که سهر همین نیست که واقعیت نگر آدم خیال میکنه واقع نیست و اینطوری که در تاریخ نمیشتن و در فوائد اشیاء موجوده ظاهر که این هست این خیالی که نیستیه بله اونه که خیالیه تناب رو گرسن شکل مارش کردن مثلا. خب این درست خیالی از مقایی کرد اما این که به جیبه بزنن تو آفتاب بگردن راه بیفته حرکت بکنه بعد حرکت مثل مار نمیکنه تکون میخوره مثل مار حرکت نمیکنه اینی که واقعیه این همه خیبیه این امر اعتباری نیست شکل مارش خیبی نیست یا خیالاله وقتی اون حرکتی رو که انجام میداده این واقعی به هر حال انسان یواشاش معتقد شد که ما در صحه و علم مشه جدی رو برو و این مشهرا الان فرض کنید کسی آمد هست که اگه که من این مانه های دروشت درست کردن نرام میوزن مشکل دیگه که مشالا باید حسابی کن یکی مشکل مسئله پیستا موضوع شد یکی همی که خیلی حالا فرست که این کار این شخص حرام اصلا اینو کهزه اینو قشه اینو دروبه اینو دجال دجالی که انسان بگه این مانه درام در میوزن با جیهه باید راه داختن این درست همه کفر هم اتصال میکنه خیلی مشکلی چیلی یعنی هم نایی موضوعیش با مشکل رو هستیم هستیم همیش مشکلی دیگه چیم تا این نوگه به کفر تصویل رو ترمید جیره در تنابی به شکل مار کچی راه امزام خب کار برگی کرده دروب میگه خیلی خوب دروب نوگه دروب کفر نمید این که از صاحب کافر اینه چهارش این کنی پس یکی خود تشکیف موضوعشی که خیلی مشکله یکی هم باز خب که هم مثلا برموضوع حرمت خیلی مشکلی دیگه نیست لازم ممکنه حرمت بلازه که باشه بلازه قش باشه مثلا دکلاگی باشه اون مشکل دو کفره من تحیل را مطلب برسلم باز می که ذهنسون آماده داشه که نقاط کور مسئله کجاست مشکلات مسئله در کجاست از حرام بود که جمله بلا بلا ضروری رو اخبار بهی مستفیذه که تصادفا ایشون همه خبر اول رو گفته شده بعد اخبار چی می‌خونه من ها ان صاحره که کافر در کبره و بعدین ها من تعلم شیئا من الساده هم گفت روایت و بعضیشم روایت سکونی آورده دیگه دوبار بار نخونه. و و هم روایت دیگریست علاقه رزالی که اون در اخوات فقط من نقطه رو از کردم کرارا مرگوم شیخ انساری در مکاسب خیلی مغیر به نقل خود روایات نیست خلاف صاحب جواهر خیلی هر چیز من اون جواهر تقریبت خیلی مصره باید هر رو میاره خیلی حال و داره شیخ قدس الله نفسه در معاصر ما ماه حکیم تقریبا زیاد میاد تحویل های مثل روی در این چه نه اول درست ماه حکیم باشه اول در مورد بازار که اخباری مستفیذه تضیعت همینطوره مثل روی شعر گویا اشیاء تا خیلی اخبار نمیاد اما ادیا نه در هر مسئله کلی روایات و دوباره و شاز و شازد و, نادر و سرگیم و همه رو میرن برای حواعد خاص خودش بعد سنه علم الکرام هونها یک عقیقی مقامه اول مراد از سه نهی تشریف موضوعی که مروم شیف قدس الله عنه به دنبال کلمات لغری ها از هست البته به نظر ما قیل از اخبار های لغت با دیشت هم بخونی بردگیم واقعه لغتن مالت و خروم و دفعه این یکی از است که در کتاب سهام آمده اما مثل همین سهات واضریه می کنمشه بخوندیم میگن خود لغز سهام باید به باشه اما خود معلقش مرادش این که سهام بکردیم به سریع اما اسم کتاب سهاره مثل سهاره باید سهاره نیست میگن حالا یه حاله مالت تو که مقخدم و, و دقه از این عبارتی جولیه است این جولیه اینجا عبارتی بندی از کیسا. این معلقه به و در این معلقه که واقعیت داره ما احاطه نیستی پیدا بکنیم و ان این عبارت ان هم که این از نهایی ابنرسی از نهایی ابنرسی تاریفی قبل از سهار حرف و ان این اشاره اجمالی اینجا بکنن بعد اشاره خاصی در ادیر از خطور احلاقا مثلایی که سرکرده کردن و فکر کار بکنن و این معنا بیشتر کار شده که اصلا حقیقت سه سهره و با اشتقاقاتی که داره اون نکته اساسی سرک و وعن سر. یعنی انسان مثلا فرض کنید این دیوار میبینه این کاری بکنه که دیوار نگیره، مثلا چیز دیگه ببینه از که صحر میگن در لغت در این معنی دوبار که از نهای ابن عصی شده این در کسوب زیادی از لغت آمده که داشته به معنی اگره هم همینه مثلا سهره نوعی سبب سهره هون این سبب هم یعنی مقابل که چیزی هست یک کاری میکنه برگردن چیزی دیگه ببینه اصلا حیقت سه و مشتقات سه خونه و انصفاد سه انحول خرده یا خدا یا خدا, خدا، خریدادن یعنی چیزی یک واضحیتی موجود نداره او خیال میکنه میگونه و انراب اندهال اخراج و الباطل في صورت الهرم این هم این سه چهار تا معنا با هم معنای که آقای خویی میگن نزدیک میشه آقای خویی این واقعیت نداره تصرف رو کنه نه اینشالله عرض خواهیم در که سر برده از معانوش واقعیت داره که خیلی احساس نداره این سه چهار تا معنای که در سه و در نحالی نسی آمده اگر یاد رو باشه از این صاحبا در دمیان مسابر هرستانت مثل ابن سیده دیگران که طاقه های بسیار خوبی هست مثل ابن خالص که به سبب زحمات بیشتری کشیدن و موارد این صاحب خیلی لطیفی رو بیان کردن جاعت روحبی مسابر که شما عبودن در اینجا همه مالغا نشید شما هفته برده از مسابر روحب چیزی نقوم کردن و سفر قاعده باید مرموم شیخ به نظر معلوم بکنه چون لفظ سه در آیات کتاب نسبتا کسی رو استعماله سهر و سهران و ساله و مسور و توسحرون و سهرهو اینا استعمالات شده من این روز که حساب کردم با این موجان و فهرست مورد با مشتقاتش در قرآن آماله البته در قرآن آماله بجانبیشون چون من احتمال در معلومو پرست کردم نشد بیفرسته رو تا آیات در تفسیر را از این چه از مورد هیشون نرکرده سه موردش مدنیه در یه چمه مکیه من نشی لب در مکیه در, در مکیه هم اون چی که ما نرات کردیم در آیات یکی این که خود مشکی ببخشن کلام رسول ها سه رو خیلنبر صاحبه مجیونه خب طبیعتا این دو صحبتی که مشکی به صدر پیغمبر مال مکه بود که تو مدینه نبودن ها یه سبب شیرا مدینه کمتر ساز شده چون این اصطلاحات ان ها ذا صاهر درست نیست نورنگ درستی پیغمبر صالحه اینها مال مکه بود تو مدینه نبود یه علاقم مال انبیاء اصالح که بیشتر انبیاء اصالح هم در رثه موقت اونی که تو هم بیاره سابر هست همینی شهر توی سهر کار برده شده قصه یاد تو موسا و حالون و الاخره وقتی مناسب بود که ایشان مرحوم شیخ از همون هم به اصلا سبر اول شروع میکن جلو میامن اولا بعض از خدا آیات ممکنه که انسان به درسی یادی که معنی سهر مثلا یخیر و علیه من سهر انها تسا به اصلاحای سر یک نوع تصرف در گوهر خیاده در گوهر خیاد تصرف میکنه و او این صورت رو میبینه در که اون ماده رو نداره اون واقعیت نداره این راجب اجمال که من حالا فیران فرم نکنم عبارت شیخ رو بعد در حاله بحثا بشید. و یک مقدارم عبارت اصحاب رو اگونده ایشان و رد اختلفت عبارت الاصحابی برای آنه از عبارت اهل سنت این هم چیز نیار ظاهرش عبارت دیده که ایشون اون عبارت قواعد علامه است، قال علامه در قواعد تحرید که علامه قواعد قرار رخشون نسان بشه از سال ایشون سه گفته کرامون یا تکلمو به اصلا به از دو تلسون او بگرن یک تو یا می قوم روغیتون روغیه که رقا از شده به معنای همین چشمت دو چشمتون این چیزا یه برد دستن یه بردیه میریسن هموه جلب و در برد بود. این رقیه رو اصطبا همین میگه همین نه اون درمان داره اون در اصطلاح خود زبان پهیم امن روحیه عبارت از کلمات منظومی بود که بعضی ها در حال باستان میدین بعض از این برون جنگی عجی. و تو یعنی من هست یه نهره بستن دم از خلاه مجیه چیده می کنم روحیه رو بیدین قبیل مثلا فرص مریضی میگوزن شاهو در مثلا شروع خرمیز و بارم نفتند این رو رویه می بسند اصلا رویه اینه و این هم خودش درسی دارم این شبه اگه کردم چند تا رویه از فیه همه هم نمبوله خیلی بگی بودند فیه به اصطلاح اینجور تلماس رو به کار برده باشند یک فرصتی بود اون رویه هایی که اصفیه همه و این رو به به اصطلاح فکرش را هم به باب افتعال می بردن کارمو یسترگونه به کذا این یسترگون نبونی رویه رو یسترگون نکنید. نبونی این کتابت همه اما اونی که مال رویه است یسترگونه به کذا این رویه رو چون اون یسترگون از بابه بر که رقیه عربه یسترگون از باب سرگرم هست احتسابه سرگرم هست, هست این سطح به مثل همدیگه نوشه میشه با شواهر با نگاه مرافع کدو میگیه گاهی یسترگون مثل یک سرگون یعنی دوزی می گاهی یسترگون یسترگون نمون اونها رو به برگیگی میگیدن اون از باب استفعاله لیکن ماده سراسی مجردش از رخت هست تربون در قطعه کنید سجور در آتیش این اواره اینکه کسی که تا کسی بارد نروشه میتونه درست بخونه از و از رویه از سی مجردی استفاده استفاده تربون یا سفیه اساتوجی الان باب تصانی یا باب اساتوجی استهاره یا تربیون بوده ان قوم می گفته میشه یا سرون یعنی رو نمیخوردن میگن یعنی کلسان البته در واقع عربی در بعدها در اصطلاحشون اون چیزی که به هم کلمات عجمی مجی بوده روغی میگفتن و هنچه که داره, داره که این از زمان خود تهران صحابه صحبه ازش شما داشتن گوشی چی رفتم یکی بود، به ما گفتن شما رویه ولی یه دنیای جیم جی بود ما بلد نبودیم و این بالد سوی هم خوندیم خوش میگذره و ما خوبی بگذره اوزای در هر از این هم اسمش از باول استرقاء در قرآن، این عنوانش استرقاء، ای از استرقاء. استرغاب بر دگیرشنه در از اید استرغاب استرغاب جزئی از ثرقه کسی که دوزی رو شغلش داره نصف یک ثرفه استرغاب یعنی جزئی رو شغلش ثرقه رو شغل کرده البته این لفظ که تاباتا یک دور مرشته میشه لکن به شواهد و قرائن فرق میکنه با قرائن و شواهد میشه فهمید که این یک ترقوم از ثروت یا از رقیه یا از رقه هست رقیه به که هر دینه حتی که اینجا نوشته و بعدها در دنیای اسلام یه مرده رقیه های دیگر آمد از لغت هندی و اونا اصطلاحا منتر بین رویه که از لغت هندیه بعد از این سال مندی است. من دیستن اونتا مراجعه کنن به هم بقیه کنشون مناطر هستن مناطر. مناطر. مناطر هندیه. به لغت هندیس اونم هم شبیه همین رقیه است همین اکیمکیه لیکن به لغت حالا اگر فرصتی شد بعض از ها را که درد از رسول الله هم شده فکر نمی که هم رسول الله عزیز هم یا یعنی احمروشه هم یه یعنی احسرا فیده در مصهور خب از پیغمبر شده که نعقل شده که سرین نیست که اون مرده که آزر در سهر ماریا. مثلا هم هم افیروند از آقا بودند از آنیون هم نکودند خیلال نکرد این داری این هم بعد هم تهیروند دیگویلو هم داری خلال از یا مرشه که بدن مسهور او خلقه او احلیه مثلا من غیر مباشر کرد یعنی یعنی خودنی که باشه و میتونه به نجور م این عبارت علامه در حقیقت چه؟ وزاده که منطقه او عقده او عقدون عقد یعنی در اصلاح اصلا دعای برای بستن در محبت نه کلامون و رقیتون او عقدون امیدان حقیقتون مجرس وضع داریم مثاله او احسان او احسان احسان جمع قسم و احسان اون که جمع احزیمه است، احسان و احسان فردشون تبریدن گفتیم مناعی اینا در جزید با چیزهایی که داشت مثلا نیامون در احزیمه که شما معتقد که هر چیزی روحی داره نشداره ملک محکر داره مثلا خوشی یک ملک محکر داره اون وقت یک مطونی رو برده یا ملکی داره یا مثلا ملک موکلی داره یا روحی داره نفسی داره چی یک مطونی رو تنیه کردن مثلا این شویه عبس ملک اگه می کنم بگم عبس ملک اگه های به هم نکرده و عبس و داره که این خار رو انجام داره اینها ها رو اصطلاحا انوار قسم بوده الان قسم گاره به ملک موکلش ملک ملک بوده گاره به چیزای دیگه بوده گاهی اینها عزائم میگفتن گاهی فرق میده این دوتا رو به اعتبار مثلا اگه به ملک قرشی اینها باشه اینا مثلا هجیمی میگفتن اگر به خود تشویوان یا خود اجنه باشه فی مثلا مختلف جن ها خرافاتی دارن جن ها ملوکی دارن طرزشون در مثلا هفت تا ملک و پادشاه دارن پادشاهانم جن رو ایجاد میکنن برای کارهایی که باید انجام بده و از دروس دخنه که دخان یعنی دود آتش روز میکنن این هست برای ده از کارها پس دخنه انوار مختلفی داره می یک نوع برای بیشتر بیشتر برای تری در بیشتر برای تقریه دهنده مره, مره. مره. وقتا بازی در اعمال ترمی داشتن اگر اعمالی بود که ملایش رو احضار میکردن بوهای خوش او و اعمال رو می شوینا هگر کارهایی بخواستان بکنی که مثلا شیاطین رو پشکل گاو برو مثلا قلعه برو اینجور چیزا بوهای درد رو به کار برو یا رو از در تفاصی, در تفاصی در و تصویر سورت کسیدن چا بیده هستان برای جل محبه اصل اکس مره که می پیشن اینسان می ای پیشن اکس مره رو در می پیشن برای جل محرب اصل به طرف کنید و نفس نفس در می اون در می که به انحال مختلف میشه که و تصفیه تو نفس یا مثلا دلیخی های میکردنی که یه نوصی رسولی که ارفانی پدا بکنن تا نفسشون تصفیه باشه و بر اساس تصفیه نفسشون بسنن با این نفس صافی در اشیا تصفیه بگذارن یکی با حاضر بکنن یکی رو ببرن یکی رو بکشن یکی رو کذا بکنن اثر همون تصفیه نفس درد مرحوم شیفتالیوم که ندید کل جمعی و زالش یک کل قوارد او یعنی شیع هم این را را از عمل کرد. از اینجا وارد بخص موضوعی میشه شیف چون در کتاب مسالک بود یک رسو به سببه ها ضراران اولقهی ای بود این را یاشاش معاتقه چند ازده که این داخل که این مسالک در برن دهان راشته شده نیست اما یواشاش این به ذهنشون رتی که در باب سهر این معتبره بله ظاهر مساله که دروس معتبر معتبره سهر حل ازرار یعنی برد اینه که آیا در باب حیرت سهر ازرار دخیله یا نه حالا ایک خیلی به زن خودش که زنش هم هست بیعلاقه هست اگه آیا دعای, دعای اونو برده بکنیم لخمه مخمهی که علایق هم به ذهن می‌گذاره خب اینکه تزوات معلومه که می‌گذره ممکنش هم خاصی نباشه این آیا این هم سحر یا نه این نکته اینه یا هر چیزی که در شخصی تأثیر می‌گذاره اما ضررش نیست اثر تأثیر می‌گذاره که این سحر رو بشه به سر کارش بوابسه خود ایشا هم می‌خوابون این تأثیری می کرده که اون به سر کار آیا این هم سحر طاووس سر شامل میشه یا نه این به عبارت نخرا ما در باب سه مجرد تأثیر کافی سوار زرد باشه به این قولید تأثیر خصوص ازوار مسئول و غرفتن رو در این در خواهن هم روشنی تا شیخ میخوان بارد به موضوعی بشن که در باب سه چی معتبره؟ ازرار معتبره؟ ازرار باهم سابقا تو زیر دادن تراجی به زرر و حرق و فرقی اینطور بخص هست اینشادا تو بخص رسوی موتنرز میشیم که با لحاظ مجموع شواهر قبضه بخصی فهمه زرر نفس هر وقت در بدن انسان در مال انسان در عقل انسان نفسی که داروشی بشونی زرن در حیثیت انسان شرافت انسان عزت انسان ترامت انسان نفسی کمبودی خیلی روشه زرد در حیرت در باید تقرب با ملاحظه مشتقاتی فقود صورتشون مواردش نتیجه مهایی نقصه زرد نقصه آیا در باب سهر نقص مؤتمره یا نه اگر نقص نباشه همین که شما یک کاری می که من بادار باید و کار انجام زنید این سهره مثلا کاری می که این خانم به شو داشته باشه نقص یادی می کنید هم یعنی آید در باب سه همین که شما تأثیر در طرف داریم این اسمش یا تأثیری که منجر میشه به مسئله زرن این بحثی که مسئله که من خوام فهرستوار نباید اصافاً بحث خوبیه در باز بالاتر از این استفاده در شهی که استخدام ملاقی که استنظار شیاطین در کشف و قائبات رو یکیسی یا آمن عصرم گم شده این هنزار شیاطین این جن این ملائکه پیدا میکنه حلاظ این مصاب چون ممکنه در دوران اصاباتشون روانی باشه با بعض اصابات روانی درست میشه و استهزاره و تلبیسه این. تلبیس اینجا البته نصف مختلفه یعنی مثلا مرک رو به صورت یک بچه در میریان یا جن رو که در خارج شکل خارجی، در شکل چخصی ببین اصلا جن که اطلاع بس روید شکل و, و اشکال مختلفه حتی کل ورکنزی ملاقی که چون جسم نوری هرسن بیرین اشیار خصیصه متلبس نوچی و کشف غالبات علا لسانه این حالا ایک کسی گفت آقا من جم میعظار کردم یک غالبی رو پیدا میکنم اصلا این اصلا شما تراک در پرانه خوب تو پران درده هست بگیرم اینجا آیا این صحره این حرامه آیا موجب کفر، این, <تصفيق> این کشه و غایبات علا دسانه وقت اینجا مشکلش چیه اینجا منوشه یه اگر برابر ما باشه و ظاهر همون مسئول پیمازکران ملائکه این باید درست بکنه آیا میتونه ملائکه رو مسخر بکنه ملائکه رو برناشو ایبایت داری باشه این درشتی ها خود سوگردی یا ممنون جن یا شرافی و اضرار در این جال یعنی ضرار به جن ضرار شیطان ولی اضرارو به هم یه به تسخیر هم تحضیب بله هم من المخالفت الله و اجای هم باز در کتاب ایزا ایزاه تختور محفظی به سر انلامه ان رفت این عبارت میگه مال ایزاه همی در ایخال مال تحریب تنقیه حاضر محفظه این انهو استهلاس آن خبره کارهای عجیب قریب بکنه اما به مجرد تحصیلات نفسانیه و حسی او به استعانه که به ترکیات کرد و او درده تو تواکل. که استعانه ارزاقه بشیدید ملک خلاه ملک مبکر مرد اما این ملک هایی که در این مساله بیکینو سرمال ترسیده شدن اسمش رو بفهمیم. لذا ملکیت و ملکی نام بودو به وضار در, در صورت امکان این زیاد کاری زیاد اسمشون رو در صورت امکان شوان نامی میشنویم که دیده باشن دو چهار شش هشیم نامه. این هم اسم بودلوه چون به وض چهار وابره شش هیه این دو هش به اسم اسمی برمان که این نامه رو به مخصد درسیم توی مجموعه کارهای سهری شما اگه من از سهلی از سهلیت نباشه توضیح میدید یه این ملک بدون خیلی اعتقال عجیبی برن نه به همین صورت به دو دو چار یا به صورت بیست چون مجموع این چار هد برمان بیست میشه دو چار شش میشه بیست و عدد بیست هم رو خیلی از کلسمات و خیلی از اون خودشون. عدد بیس رو بخواه میبرن اون عدد بیس اشاره به همین گردوه بلکه چیزهای عجیب از خواهدن یه پوسیت میشون شد درده شدید تواکب و تواکب رو خودشون در رفت نمی کنن امودشون اون ملکی که در افتیار رو کنه یا نفسش یا تزاج اون به تمزیج قبر سماویه به قبر عرضیه یعنی از میروه های بیگی استفاده میتونن برای نیوه های زمین یه تلسمات باشه. حالا این تعابیرهای دقیقا همینطور که همیزی ها اصطلاح خودشون به طور کلی علوم قیدی و علوم قریبه و باید شدی رو بید همشتا میونن اصطلاح خودشون که دستا رن داشن کلیو سر قدمه کلیو سر ورز این پنجه علمه که کلیو سر کافه چرا به کیمیا ویمیا ویمیا ویمیا و, بیمیا و, بیمیا و, بیمیا و سیمیا و رینیا این پلسمانی ای نالا رینیا یا سیمیا چه این که از او عراس سمید استعانه به ارواد سازجه و دیگر هزانه من از هز کردن یعنی هرزمه علیک که این کار انجام بودن و یک خلوفیه نیرنجا این جزء در نیرنجا در در فاسه نیرنجه همین تردستی به ولکلو حرامون فی شریعت الاسلام و مستقنگو کار درون اثبات این ها فیلی مشکلی مثلا بی که منونه و طبع و علاها به تفسیر این محکی تنقیم منون کار در مرداد و تسر و نیرنجات دروس به اظهار دراخل خواست ارتزاجات به اصلاب نیره نه این نیز نیره ما همستان که به ما علاقه ما با قمل ایک اصطلاح رسمی دارن ایک اصطلاح رسمی دارن که در استان چینیاگی و تنبیه تلا ما با قمل ماه از این چیز دیگه دیدید یالا بود در نحل خودشون خیلن دیدیم نگدار سلوها باها علا محمد نبا آجه تمام اینا سهره تمام اینا حرامه جایی نرده خرفاسی شده مثلا با همدیگه و منشایشن